اوزو بالله من الشیطان الرجیم اسم الله الرحمن الرحیم و به غین سلام با ذکر این سلواتی شروع کنیم بحث خودمون رو اللهم صلی اللهم انحوستانی ماله و دخلون فی تنقیه جزء الموضوع شمایزا لاحظنا دلیل وجوب امساک زوجت بمعروفم او تسیح ها به احسانم الازی دل على وجوب النفغت تحت انوان امساج بال... بمعروفه و بما ان المعروف من الارف و هو الشائع و المستصاغو ف اختزت السیدت والارف ان تكون نفغت زوجت في زماننا هزا مثلا به نهب اتم و اکملا مما کان معروفا بالنسبة لها في غابل السنین به هیسو ذلك الحد عن کونهی معروفاً و مستصاغاً نتیجتا نتیجتاً لاختلاف ظروف اقتصادیه اول اجتماعیه اول ثقافیه فصافیه تغییر صدق و انوان نفقت به معروف اما کان علیه صادقاً بحث ما در نحوه ثانی خواهد بود. نحوه ثانی اونی بود که سیره موضوع ساز است ولی نه تمام موضوع رو بلکه جزی از موضوع رو قبلا این رو تقسیمات رو نوشتیم ما که گفتیم سیره رو تقسیم میکنیم سیره تقسیم میشود به اون سیره که در حکم استعمال میشه یعنی برای رسیدن به حکم به کار میاد آیه متحریه این خودش دو قسم بود سیره ها این قسمش دو قسم بود یادتاست؟ نیست آقای اسکری یادتاست؟ نه حجم دارم میگم سیره چه تو حجمه دو جور بود آقای اسکری شما یادتاست؟ سیره هایی که توی بود دو قسم بود یا اصولی بود یا فیخی بیادتون نیست افتید بعد اسم دوم سیره های مرتبط به موضوع حکم شریعی بود این خودش سه نوع بود نوع اولش سیره خودش موضوع حکم شریعی بود بگفتیم از سیره یجبال حب ها نوع دوم این بود که موضوع را برای ما میساخت. نوع سوم هم این بود که موضوع رو برای ما کشف میکنه که هنوز این رو نخوندیم اون نوع دوم که موضوع رو برای ما میساخت خودش دو نحوه نحوه اول تمام موضوع رو میسازه که گفتیم الان چند روز تو اون بودیم نحوه دومش همینیه چلا میخوایم بخونیم که موضوع ساز هست ولی نه همه موضوع را بلکه جز از موضوع را و لذا جزه موضوع الان تو مثالای ما باید توجه داشته باشید نکته که تو این ن باید حواستون بهش باشه اینه به که خواهیم گفت توضیحاتی که خواهیم گفت اولا باید موضوع ساز باشه او نه کاشف باشه موضوع ساز باشه. ساانی هم تمام موضوع نه جز موضوع ساز باشه حالا ببینید. از نح ما لهو دخلون فی تنقیه جزء الموضوعه اون ای که ما مثل هاش است لهو براش دخل وجود دارد دخالت دارد دخیل است در تنقیه و بگو یا تحقق دادن به جزء موضوع کما ازا لاحظنا دلیل وجود امساك که زوجته به معروف او تصریحه ها به احسانه دلیلی داریم میگوید که اطلاق و مرتانه بعدش وقتی طلاق دادی دوبار حالا یا امسا کن به معروفه بفن او تصریحون به احسان دیگه پس حکم این است هر بردان اگراس پشت تاکنی پوش تاکنی پوچوش هر نه نمی‌نیس بینه تصریح به احسان واجب است یا امسار که به معروف یکی از رو طبال رو بکن یا زنه رو نیگردار به معروف یا ولش کن اونم با احسان بهش خوبی کن این رو همینجا داخل پرانتز ارز کنم حالا چون طلب هم طلاق ملاق زیاد شده طلب ها باید بدونم به مردمم بگم زن رو یا باید باش درست زندگی کنی یا درست طلاقش بدی اگر طلاقش هم میدی باید به احسان طلاقش بدی حقوقش رو زایه کنی حقش رو بگیری چهار تا فش بهش بدی و بعد طلاقش بدی نه اینا, اینا نمیشه یه جوری طلاقش بدی که به احسان حقش رو نوید اولا پایمار کنی اون که حرام زلمه، هرچی چی برده باید, باید بهش پس بدی اون چیزا که بشتادی اونها باید طبقه اون احکامش بالاخره حقش رعایت بشه عدالت رعایت بشه بعد احسان هم تازه باید بکنیم تصدیحون به احسان لذا خود طلاق هم دستور علمه داره با همین تصدیحون به احسان مطلب از توش درمیم خب یه لحظه من نگاه این توضیح بدم امسا به احسان واجب است امساک به معروف واجب است امساک به معروف تصریح به است به معروف یعنی حالا همین تیکه شو به معروف واجب است یعنی من زن رو نگردارم ولی به معروف باید رفتار کنم امساک نگه داشتن زن به معروف یعنی با اون چیزایی که خوبه معروف یکی از موارد امسا به معروف اینه چه باید نفقه زن رو بتیم نفقه دادن برای زن هم باید طبقه همین امسا به معروف باید نفقه به معروف باشه نفقه درست باید بهش بدیم اون چیزی که متعارف هست اون چیزی که معروف هست اون چیزی که بین مردم مقبول و خوب هست اونو باید پرداخت کنیم نفقه معروف رو چه کسی میسازد؟ نفقه معروف را عرف میسازد عرف برای ما مشخص میکنه عرف برای ما محقق میکند که نفقه چجوریه؟ اتفاقا در طول زمانهای مختلف فرق فرم مثلا هزار سال پیش نفقه به معروفی بود که برای زن یه خونه آماده بشه، زن کامل بشه، مسکنش. مسکنش چه جوری بوده؟ یه خونه محترمی بوده، توش نه کولر بوده، نه تلفن ثابت داشته، نه توش آشپزخونه اوپن بوده، نه گاز رومیزی بوده، نه هود داشته، نه تلویزیون داشته، نه هیچ چیز. یه خونه معمولی شو فقط یه پنجره داشته بودید دو تا تاق چه. چیز دیگه نداشته همینی نشود نفقه به معروف اما الان چی؟ الان دیگه فرق شده الان که به که ایجاد شده نفقه به معروف عوض شده بدون می میسازه برای ما نفقه جدید رو این شکلی ساخته خب حالا نفقه به معروف این شکلی ساخته شد حکم ما چی بود؟ امسا که به معروف واجب است نفقه جزی از این موضوعه پس عرف جزی از موضوع رو برای ما ساخت اینو میخوام میخوایم بگیم میخوایم بگیم که پس انه و که ماله و دخل فی تنقیه جزی از موضوع مثل نفقه به معروفه که جزی از امسا که به معروف است تمام پس انه و سانی دوباره از اول میخونم دوستانی که تازه شرط حضور پیدا کرده کردم اینو از اول ببینم ماله و دخلان فی تنقیه جزء موضوعه چماعیزا لاحظنا دلیل و وجوب امساک زوجته به معروفه بفتم توضیح دادم یا حکم دوم او تصویح ها به احسانه البته یه بگم این دوتا جدا واجب نیست یعنی حالا فقیش رو بحث کنیم این نیست که امساک واجب است این یه حج دوم تصریح واجب حج نمیشه که یا نگردار یا ولش کن یعنی این دوتا به صورت تخیری واجبه لذا این رو اشتباه ما اگر اشتباه گفتم من این رو تصریح کنید این بوده یه حجم داریم در واقع این رو تصریح کنم امساک زوجه به معروفن یا تصریحش دیگه یکی از این دوتا کار رو باید انجام بده شوهر پس یه حجم دار. این رو اشتباه پیش ناید دوباره یک حکم تخیری که الان شاهد مثال ما الان روی این امساک و زوجت به معروفنش هست خب حال این یه دونه حکمی که ما الان داریم یه حکم تخیریست الازی دل علا وجوب نفرت تحت انوانل امساک که به معروف. خب. این دلالت می کند بر اینکه اگر امسا که این زن رو انجام دادی این زن رو نگرداشتی امسا که به معروف باید باشه امسا که به معروف دلالت می کند بر مجوب نفقه و بما ان المعروف هم. من العرف از اونجا که معروف اصلا یعنی عرف دیگه معروف از کجا میاد؟ معروف رو فرسیش عرف دیگه معروف یعنی یه چیزی که عرفی باشه عرف بپذیره و هو شاعه او و مستصعه. یه چیزی که بین مردم هست و اون رو پذیرفتن مستصاق اینا عبارت, عبارت شهید صدر دیگه تو برس که دماغ استادن شهید صدر اگر کتاب بوهوس رو ببینید تقریرات آیه حاشم شارودی رحمت الله علم از شهید صدر رحمت الله علم اونجا تو بحث سیره این موارد رو نوشته بید این عبارت همین مستساق نه اینا همش تعبیرات همون بوگوز حالا بوگوز هم باید هم عبارت آهیش خاشه می باشه احتمالا همون این عبارت شهید صدر هستش که آیه شهرودی تقریر کردم برها مستساق یعنی مجاز شمرده شده پذیرفته شده آقا جان معروف به بمعروف یعنی اون نفقه که پذیرفته شده باشه بین مردم رایج باشه الان شما برای خانومت یه خونه کاهگلی با تیرچوبی ساخته شده اون بالای سخت یه اون از این دریچه ها هست که قدیم ها میذاشتن هواکشه ها نمون که اینجوری بود بعد یه تنور باشه اون بگی تو تنور خودت نون خودتو باید بپذیرفته میذارم یه چاهی بذاری اونجا آب رو باید از چاه در بریم اینا اینا, رو اینا شایع و مستساق نیست نه شایع کجا از نیست و نه مستساقه این رو اجاز نمیشمورم پس نطقه به معروفه باید اون چیزی باشه که شایع و مستساق باشه و به ما انم ان المعروفه من العرفه و هو شایع و مستساقه فا ازختزت سیره خیلی خوب حالا سیره اقض می کند ف از اقتزت سیل توول عرف و انتکونه ن فقط و زوجت فیزمان آزار مثلا به نهون عتم و اجلت این اقضار میکنه که الان اتم و اجل باشد. من ماکان معروفم به نسبت لحافیغا برسلیننا کامتر و تمامتر باشد از آن چیزی که قبلا ها معروف بود، اونا معروفن قبلا معروف بود به نسبت به این نفقه زوجه در این زمان در غابر سنین به نسبت لا لا رو بزنید به نفقه در غابر سنین یا یعنی نفقه در زمانهای گذشته نه زمان حاضر عبارت منظور شيله میگه اگر سیر اقتضای این را داشته باشد که نفقه زوجه در این زمان ما مثلا کاملتر و تمامتر از آنی باشد که قدیم ها معروف بود غابر یعنی گذشته سپری شده سنین هم که یعنی سال هاست فی غابر سنین آقای کوسری سنین اعرابش به چیه؟ به؟ ملحقه به؟ سالمه؟ به؟ سالمه؟ پس الان اعرابش کدومشه؟ کجاشه؟ سنین یاش علامت جهر شده درست فیقا برسنی نه به حیث و خرج از آلکال حدو همکان این معروف و مستساغ هم به طوری که اون مقداری که قدیم ها بود دیگه الان مستصار نیست معروف نیست قدیم ها مثلا برای زن مرکب میخواستن تریه کنن یه اولا بهش میدادن میگفتن با این مثلا هم هجت بود الان شما یه اولاق بخاری و بعد خانمیت بریم بیان بفرما سویچ معروف و نیست بارداته چی؟ اولاق؟ شده شده و یک خالای ایمان ایمان؟ ایمان؟ برای اولاقه اولاقه که باید همان به این باید وارد کند پس <تصفيق> بدونت نارد پس باید منتظرشین پیمت خرم بره بالا خب نتیجه اختراف ظروفه، اقتصادیته، اول اجتماعیته، اول ثقافیته آقا چرا اینجوری شده؟ چرا خونه که و که و اینها چه که که که که که که که که که شده؟ الان اینو دیگه نمیپذیرم؛ دیگه معروف نیست، چرا؟ چون فرهنگ عوض شده. اقتصاد عوض شده. زمان شام هم یادمه. خیلی اقتصاد پایین بود. مثلا پایین که ایران خودشان ماشین تولید میکرد. در ماشین بود دیگه زیاد بود. ولی توی کوچه میدیدی یه خانواد ماشین داره. یادم. از زد اقتصادی اینکه که بگنم ارزونی بود این الفا. ارزونی؟ یه جوری بود که درامت هم خیلی چند بود دیگه. به کار می کار که دهمان خوبوق می گرفت. حالا ارزونی با این دهتمان اب کن چه میشه؟ ض که نه جنگی داشتیم نه تحریمی می داشتیم نه هیچی نداشتیم فقط نقدمجو در می میفرختیم. به اون شرایط، اون اقتصاد اصلا به درد میخوره اقتصاد س بود خیلی اقتصاد ناجوری داشت. حالا اون زمان پس ماشین جزبه عرف نبود اما الان اقتصاد عوض شده الان مردم با این همه آه ونالو میکنن؟ با این نخ زدن ها چه دارن ولی خیلی خیلیه الان هر خونه حداقل یه ماشین داره بعضی خونه ها دو ماشین داره هر خونه حداقل یه خونه داره بعضی ها میبینید زمین داره ویلج داره کلی چیزای دیگه داره اون افرادی که الان تهران و کرج و اینا خونه های ویلایی بزرگ دارن همینا میبینید تو شمال رامسر ویلا دارند و اینها اینا چه سایین که دبلازنگل هم تو دهات پدرشون تو گل و اینها مثلا یه زمینی داشته نداشتن ای نه داشته دیدیم دیگه اینا و رو دیگه اینا تاریخ چیزی نیست که تاریخ رؤیت شده خودم دهاتشون راه داشت تو گل لای با یه خرید چیزی میتونستن بیان تو زمین اصلا که راه ها قطع میشد و اینها وضعیت اقتصادی این شکلی الان عوض شده همه اینها شدن آلمای با پرستیج بالا و با مخالف نظام و مخالف دولت اسلامی اینها شدن این یه چهار سال عقب برگردن میبینن پدرشون چجوری بوده پدر پدربادرشون چجوری بوده برحال این ظروف اقتصادی این ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی بزن اجتماعی عوض بز شده قبلا از جهت اجتماعی انسان یه خونه آپارتمانی میداشت مثلا یه مادر در و الان نمی کرد همه ما دیگه تو آپارتمان زندگی میکنید مثلا اینا فرق کرد یا مثلا تلویزیون از این ال‌سی‌دی ها تقریبا نبود الان دیگه اجتماع عوض شده اون ظروف عوض شده لذا عرف اختزام میکنه که الان نفره به معروفن با نفقه 100 سال پیش خیلی نسبت به اتم و اکمل باشد او استقافیه یا که فرهنگ روست شده فرهنگ مادر، در نتیجه این پیشرفت علوم و اینها فسوفا یتغیر صدق و انوان به معروف اما کان علیه سابقه پس تغییر خواهد که صدق عنوان نفقه به معروف از اون چیزی که در قبل بوده است فتج با آزه المرتبت و منها کتابتو میبینی تو گوشی یا چیز دیگه میبینی؟ کتابتو کتاب نداری؟ من حواسن خیلی پرد میشن گوشی اگر کتابتو داری کتاب داری، گوشی نمیش فتج با آزه المرتبت و منها ولا تكفي المراتب التي كانت كافيا تن فيما اون مراتبیم که قدیمی بود علاوه رو بدی دست خانمت بگی با این بیا برو این کافی نیست در حالی چه قبلا کافی بود اتفاقا کسی که علاوه‌اش خیلی هم پیشرفته بود سطح بالا بود الان ندیدین خیلی خوبه حالا موارد تدخل سیرته عرف فی تشویر موضوع الحکم الشرعی تشویر آقای اصغری این تکوین در مقابل چیه؟ اگه گفتی؟ تشری تشری مگه ارش تشری کنه اینجا همه توجه کنه هست همه می کنم بپرسم چون اینا رو ما دیگه رو کشتیم اینقدر اینا رو توضیح دادیم تکوین موضوع حکم شرعی در قبال چیست؟ آقای هسکری تو بگو تدوین بیداره. تدوین <تصفيق> خوب زن زر... خوب به رسید چند درستیست آیه کسری در قبال چی در قبال نیست، اما یکی کاری کاری کاری کن من کچوین خب. <تصفح> نه خوب نه نه تو هم رایدت خوب کار میکنه میتونی خود تو خودتو ازامتر بیاری با. <تصفح> ولی با متحرین کچوین <تصفح> اینجا اون در کچوین دخالت داره مگه غیر این بود میخواست تو چی دخالت داشته باشه <تصفح> <تصفح> تشری <داشتیم> نفر بعد بغل نسی نه همون برای بسید شما آوز به کلاس هستی؟ آوز هستم الان کلا الان میفهمی چی بس چه بسای داری؟ نمیتونی برسونی خود تو خیلی سر بس های سر تیمونی شما شما شما فکری نیزه بسید که باید کار میشه در موقع چشم سیره یه وقت از محرقق موضوعی یا کاشق موضوعی چندین بار اینو گفتیم کار کرد اصافا این نظام و اینها واقعا یقین پیدا کنید که امام زمان داره می کنید ولی من و شما آخوند سربار این نظام و سربار امام زمان است این شغل ما الان درس این هم از خجالت داره اصافه اما خجالت بکشه طلبه انقلابی بی سواد دار میاد و اما این به اختشاشگره برو فوش بده اول به خودت فوش بده اصافه هم اون اختشاشگره روز قیامت یقیه من او تو رو میگرم میاد تو کمکار بودی بی سواد بودی بی بودی آخم بدکار بودی مجرم بودی آخم میاد بیرون غلطی میکنه من به خاطر همین افتشاش کردم بله آخون بله خوب بودن که ما سال 57 هفت هممون فدایی آخون شدیم دیگه این که عوض شد نتیجه همین قردت های ما هست برید به خود توی خود خودتون. منم مثل شما من از شما بدتر خیلی بدتر از شما و به چشمم خودمون رو ببینیم و بعد رو ببینیم من نیم ساعت بعد از کلاس بیا و اصلا نمیدونی به از من مطمئن نصف کلاس اصلا اینا مناسب نیست حالا یه یکی هم پیدا بشه به من اینجوری تذکر بده من ممنون میشم واقعا که یه خود بادم متوجه بشه خیلی خوب حالا چون شما اصلا نمیدید به چی هست و اینا منم شولش بکنم رد میشم که یه خود مهد بریم جلوفم وحاظام موارد تده خلصی البته من کامل توضیح دادم هیچ کلمه ای به نظر مذهبارت نماند و حاضر موارد موالد تدخل سیره تدخل یعنی دخالت داشتن سیره و عرف در تکویر روش بنویس دیگه بر برابر کشف از موضوع حکم شهری که این قسم نوع سالس خواهد بود الان می کنیم موضوع حکم شهری صبوتاً سبوتاً در مقابل چیه؟ این دیگه آسانه <تصح> <تصح> این در مقابل اثباتنه دیگه آره اثباتن یعنی چی؟ اثباتن در در نه بابا اثبات یعنی چشم از خود سخنانی نکن اینا رو تو عبارت بود دیگه سبوتاً در مقابل اثباتن که همون نوع سالس هست الان میخونی نه خب تاو سعتاً او تزیقاً این سیره میاد برای ما جزء موضوع رو مشخص میکنه پس در تحقق جزء موضوع دخالت داره در تچوین دخالت داره برخلاف سرفومی چه خواهیم رسید؟ اون تحقیق نمیکنه محقق نمیکنه تچوین نمیکنه ایجاد نمیکنه اون چشم میکنه از چیزی که هست خب حالا اونو نرسیدیم. حالا اینجا سبوتا که گفتیم یعنی همین توسعتا او تنزیغا الان همین مثالا که گفتیم رو نگاه کنید اکثلا توسعه داشت یعنی خونه این که قدیما کولر نداشت الان باید کولر داشته باشه در نفقه خب این میشه توسعه دیگه شما باید توسعه بدید نفقه رو قبلا خونه ها مثلا اوپن نداشت الان باید اوپن داشته باشه آشپس خونه یه نمیدونم نداشت کابینت نداشت الان باید داشته باشه. ما مندی دیده بودا تو دهات دیده بودن تو دهات مثلا تاخچی بود ظرفه رو همونجوری رو هم دیگه کابینت ما بیناتم نم. زیر نمیدونم چی نمیدونم اینجوری یه ظرف ظروف رو یه جایی با میکردن توی خونه پشت پرده تو طستو این الان اونجا کابینت هست ولی توسعه داده زیغ چطور میتونید بزنه تو بیایید ببینید عرف مثلا الان باعث زیغ اون نفقه شده یعنی تردیمه ها اوزا بهتر بودن من این خود تنگتر شده میتونید بگید هجاب هجاب نفقه رو داریم بگیم تو موضوع نفقه نفقه به معروف مثال ما نفقه است نفقه به معروف که داریم کار می‌کنیم روش اون نفقه جزی از حکم امسا که به معروف دیگه حالا این نفقه باعث این نفقه به معروف در زمان ها حال توسعه شده میگه تذیل هم میتونه باشه تذیل ستون آره اوفی دیامش آره شعراً همون قدیم که چیزی نداشتن بنیر و پولا می خونه اثر این پانجا اصلا طلا میدادن یعنی الان میگن اصلا طلا گیرونه آره مثال خوبه بله بله قدیمی ما قدیمی ما مثلا طلا اینا اینقدر سخت نبود راست میگه مثلا میگه به نفقه حالا یا جزوه که بزن میدادن چند سکه انم ده پنج پهلوی و چیزا دیگه که الان باشه اونا میلیاردین میدادن بزنم یا ببو 100 سال پیش آقا عسکری عرف جامعه و فرنج ما این بود که خونه ای که برا زمین میدادن یه خونه ای بود که پنج شش تا اتاق داشت و یه دونه نمیدونم حیاط بزرگ داشت حوز داشت باغچه داشت توش الان نمیشه اینا داشت الان اورفا الان زیق کرده اینو میگه آپارتمان 60 متری هم که یه دو اتاق داره و یه این اینم دیگه حداقلش کافیه پس چه توسعه و چه تذییر هر روفت خوب اینا رو احتمال داره بعدن یادتون بره اونجا بنویسید دیگه مثالش رو بنویسید برای تذییر بنویسید مثلا مثال دیگه ها. یکی از موارد نفقه در قدیم ها آره قالو آیاسه یا چیزای دیگه بود یا بگو خونه وسیع بود اما الان دیگه خونه وسیع نیست. خدا خونه واسه بهتر الان میشد ها مثلا همین فردسان رو ببینید فردسان یه خب یه شهرکیه که اطرافش کلا بیابونه یعنی شما این خونه‌ای که انقدر درست کردی ده برابر درست می‌کردی چیزی نمیشد که خب تا اون صدها کیلومتر مترا جا داره خب یه خود بزرگتر درست کن اینا نه تنجش کردن اصلا اهم نبود انگار مثلا اینجا ژاپونه که اصلا جا نیست اینجا که که جا نداری. عمودی دارم بیرن خب اینه افاقی خب بساز دو طبقه بساز برای همه حالا یه خورده اون وقت داره. چیزی نمیشه که پشت دل نداره که. به خاطر همین تفاوت های چیزی دیگه نفقه به معروف عوض شد مهم است بسیار خط آخرش ومن الواضحه ایشون میگه واضحه دیگه روشن دیگه انت تدخل فیل مثال مذکوره انما یک منو فی, فی تمامه. همونطور که در جزء موضوع هست نه در تمامش چرا؟ کل موضوع ما چی بود؟ بگید دمیدم کل موضوع چی بود؟ امروز خود عذیت کنم چی؟ یا امسا که به معروف یا تصریح به احسان واجب است خب این کل موضوع ماست نقره یه جوز ای امسا که به معروفه تازه اونم باید امساکه بلا تصدیل احسان کنید که دیگه نفقم ندار پس جوزه، واقعا جوزه لذایشون هم میگه که منار واضح روشنه دیگه انت تدخل فرم مثال المزگوره انداما یک اونو فی جوز الموضوع من اینو گفتم تا اونجا یادداشت داشت کنید بعدا کسی پرسید قشم موضوع و حکمه و اون جوزیتشو توضیح بدید حالا رو تخت هم میخواستم بیدیم میسرم که نشونم بله عطا کردش پس لازم میشه یهو اون فرم بزناس این карта که داشتم فعلا کارت یکم ترشام اینهار در بورد وارد میشه احصال بهارو هر وقت باش به معروف معاملاتش شما پسام دوستو کیه به میشه یوز اورجنس نه نه همین راحته میشه میشه تو راه دیگه تحلیل کرد این موضوع و حقوقا ولی این جزو به معروف بله انفاق به معروفه، این جوز موضوع ماست موضوع ما چی بود وجوب امساک به معروف اینجوری حالا شاید اونم بشه یه جوری درستش بگیم مثلا خود نفقه واجب است از این دید نگار نه. از این زاویه نگاه بگیم خود نفقه واجب است مطال نفقه به معروفه حالا به معروفه مثلا میشه جوز موضوع اینو اینجوری شاید بشه توضیح داد ولی منو اشکار میکن اگه اینجوری بگیم توش یه فتاعملی توش هست چرا خودمون تو همون هم کتاب گفته و ظاهراً بلا اشکال هم هست همونو میگه خیلی خوب و من الوازه ان تدخل فالمثال المذکوره انا ما یکونو فی جز الموضوع لا فی تمامه برخلاف اون مثال که روزای قبل داشتیم که عرف تمام الموضوع رو برای ما مشخص میکرد مثالاش کزه هش مثل مثل اولا چه بودن کلاس یه م... مثال بزنید عرف تمام الموضوع بود حالت و گمار نمیدونم لباس مختص کفار و ظهور الفاز اینا همش تمام موضوع توسط عرف واسه شده دید. خب پنج و لم لو لم یتحقق الانفاقو به معروفه لم ینتفل موضوع به تمامه روی این موضوع به تمامه بنویسید امساک به معروفه موضوع به تمامه امساک به معروفه خب حالا شما نفقه ندادی نفقه به معروف ندادی امسا کردی ولی یه جزیش که نفق است اون انجام ندادی بل به قیدی خاصت اون قید معروفش رو امسا که به معروف معروفش رو خراب کردی ولی امسا رو داری بسیار خوب این هم نهوه دوم از اونایی که سیره محقق موضوع است اولی به تمامه دومی به جزئه اما برگردیم به اصل اون تقسیمی که داشتیم. نوع سوم از اون مواردی که سیره به موضوع دخالت دارد ارتباط دارد. النوع الثالث سال ماله و داخلن فی تنقیه موضوع و تحقیق ای دقت کنید. دیره که دخالت دارد در تنقیه موضوع و تحقیق عطف تفسیره ما در اینجا گفتیم که تنقیه یعنی همون تحقیق گفتم چند بالین رو گفتم اثباتن یعنی الانه به کشف تیگه باید هر کاری از دستم برمیاد انجام بدم که آره یکی... شرط بیزنه یکی دوش میکنه یکی دوش نمی باید اثباتن به من و انه ها کاشفت خب حواس پرت میشه دیگه این اثباتن هم یعنی کاشف کاشف بوده از حیث کاشفیت خب حالا عبارت رو ببینید قد تکون و سیرت و اقلائیت بعضی وقتا سیری اقلائی منقه موضوع و محقق آن است اثباتن خب این اون تیترش به معنی ها یعنی چی؟ به معنی ها کاشفتون انتهب و به فردن خب کاشفه یعنی ما موضوع رو داریم موضوع رو داریم اما پس سیره نمیان موضوع رو برای ما محقق کنه ایجاد کنه برخلاف خلاف قبلی ها نفقه به عرف معروف تا عرفی نداشه اصلا معلوم نیست وجود نیست اصلا؟ من که مرمویست اصلا؟ محقق نیست. لباس مختص کفار اگر سیره نباشد اصلا؟ وجود نداره. سیره نباشه لباس مختص دیگه چی اصلا؟ نداره. اما اینجا سیره باشه یا نباشه ما داریم. موضوع حکم را داریم. سیره برای ما کشف میکنه. سیره کاشف هست. مثلا بزاری که خواهد زد. ما دارم مفصل مثال توضیح فردا؟ مثلا شرط بین فروشنده و خریدار اینها بین خودشون دقیقه تو این مثال رو همین جاید بگیم فروشنده و خریدار بین خودشون یه شرطی دارن یه شرطی دارند اون شرطی نه چه اگر در این خرید و خروش من یه چیز به ارزش یک میلیارد تومن به شما بدم در قبالش یه چیزی تو همون حلوش من از شما میگیرم دیگه. یه چیزی یک, یک میلیاردی به شما بدم در قبالش یه چیزی هزار کمانی میگیرم. اینو نمیپذیرم. اوگلا در بین خودشون در ارتکاز خودشون اینو دارم. خب اینو دارم. این موضوع حکم شرکت ماست. اینو از کجا پیداش میکنیم. از کجا چشفت میکنیم. سیره اینو بله ما چشف. شدی؟ خیلی ساده پسار رو توضیح دادم برای تونان. یه چیزی داریم پس محقق خش کدش سیره این رو برای ما کشفش میکنه مثال کتاب ما در بین انسان ها در بین حقال های رو داریم که در معاملات و این ها در خرید و خروج و این ها اینا شرطی دارن در واقع میگه اگر من یه چیزی یه میلیاری دادم بهتو تو یه چیزه ده هزار کمانی به من برگردوندی؟ اینجا سر من کلا رفته. من اونجا حق دارم که این رو به هم بزنم معامله رو. همچه شدید تو دل متبایعین هست. خب وقتی همچه چیزی هست، این از کجا چشفش میکنی؟ سیره این رو برای ما چشف میکنم. حالا نحوه کشف سیره از این اشتراط در بین متبایعین، این رو چتان خودش توضیح هر داد. ببینیده بایت می فرماید که به معنی انها کاشفتون این کاشفتون در مقابل همون که اونجا تچوین بود محقق بود سبوت بود اینجا اثبات کاشفیت به معنی انها کاشفتون ان تحقق فر، یعنی این تحقق مال قبله سیرین اینو محققش نمی کرد. خودش تحقق داشته این میاد چشفش میکنه تحقق فردی دابلم مسادید موضوع دلیم ببینید مسادیق موضوع اینم که داریم میگیم دقالت در چشف موضوع حکم داره فی بعض الموارد تو بعضی موارد این هست مثلا آدرس هم اگه میخواید بنویسید دوباره اینام بنویسید بنویس. بحوزه بحوز هم فی هرمل اصول آقای تغییر برس های آقای شهید صدر هست جلد یک صفحه 234 بعضی از افراد خیلی شبیهه معلوم میشه که از اونها خیلی گرفتن مطلب اصولی های الان به شهید صدر خیلی احترام قایل هست. شهید صدر یک شخص پذیروخت شده در بین محققین اصول الان هست اون خب کتاباش حوزه جا نیافتاد دیگه حلقات رو اینا جا نیفتاد اون هم علت داره علتش اینه که با اون روار سنتی اصول تو حوزه که کفایه مستاد روشنشه دیگه ترتیب اصول سنتی در حوزه همون ترتیب کفایه است. حلقات با اون ترتیب چون نبود لذا خیلی جا نیفتاد به خاطر همین اونهای که زهن. آره آره دیگه به خاطر همین الموجز آقای صبحانی رو که خوندید پای چهار اونجا آقای صبحانی زلنگه میگه که من کتاب الموجز رو رتب تا ها ترتیب کفایم به خاطر فوری جواب افتاد همون پذیر حالا شما زرنگ باشید باشین اگه میخوای کتابتون جا بیفته چاپ بشه چاپ سدام بیویستوم اینان برسه باید همون روال سنتی رو تبه جریان رودخانه شنا کنید خلافش شنا کنید نم مگه که شخص خاصی باشه که از شهید صدرم بالاتر باشه که بپذیرنه بعیده خب فمثلا نحنو حالا این مثال همون چیزیه که عرض کردم مثال سادهش رو گفتم اون ساده مثال رو که گفتم اگر اونو یادداشت کنید به نظرم خیلی کمک میکنه. چون این متن کتاب مثال رو ممکنه تا آخرش بخونید نفهمید چی شد چی میگه اما سادهش رو عرض کردم اگه میخواد یه معتی بگم بنویسید به آره دوستان که بخواهم به نمیسن اینجا فمصلا نحن و نستکشه کنجا به در این مثال در این مثال شرطی ارتکازی در بین متعاملین وجود دارد چه این شرط موضوع حکم شرط است پس دیدیم اولا شرطی وجود دارد یعنی خودش تحقق داشته سیره نمیاد ما حقا اولا سانیا. این موضوع حکم شرط هم هست همون که گفتیم سیره ربط به موضوع داره همه اش اینجا لحاظ کرد. سیره ادامه شو بنویسید سیره اغلا آن را برای ما چشف می کنند. این فرمول ساده مثاله فرمول ساده مثال حالا ببینیم فمسلا نحنو شفو چشف می کنیم. از سیره اغلا بر چه چیزی سیره بر برخیار قبل در بی اینکه اگر تو به یه چیزی یه میلیاردی دادم به جاش یه میلیونی گرفتم من کلا سلم رفته این سیره در بین اغلا هست سیره بر برخیار قبل رو میبینیم ازش کشم میکنیم و غیره منم معاوضات دیگه حالا چه بیه چه اجاره تو اجاره طرف یه خونه ویلایی تو مثلا بهترین نقطه شهر داده ماهانه مثلا به ده هزار تومن خب باست کلا رفته سرش حالا لازم ایست فقط بیل باشه اجاره هم همینطور و غیره هیمنر معاوضات این هم لا یرزونه این هم مفعول نستکر یعنی کشف میکنیم به دست میاریم از چی؟ از تیرشون برخیار قبل به دست میاریم این را که این هم لا یرزونه فی معاوضاتهم به فوات المالیت اونها فوات مالیت و از بین رفتن مالیت رو رازی نیستن دیگه آقا آره یه ماشین صفر مثلا دینا داشتن فروختن به جاشون یه کیلو مز رو میبینه اون رو گرفتن این رازی نیستن اینجا خیال غب در بینشون هست این به ما نشان میده که لایر زم نفی معوضاتم به فوات المالی الان ماشین فوت شد از بین رفت از دست دادی مالیات رو و انما یرفعون ال یدعن الخصوصیت ملحفاظ علال مالیت به ما یساوی ها عرفن آنها رفعیت میکنند از خصوصیت خصوصیت منجا یعنی اون مالی که برای خودشونه ملحفاظ علال مالیت مجموع این این عبارت بالا سید صدره خصوصیت ملحفاظ علال مالیت حالا یرشادم های شاه عبارت منصول اینه رفعیت میکنند از اون مالی که دارن و مالیت داره یه چیزی که دارن و مالیت داره رافعت میکنن به یعنی در قبال آن چیزی که یوساوی ها عرفن ماشینشو دارد در قبالش یه خونه گرفت مساوی عرفی بشه فل مساواتل عرفیتو خب اینو چشف کردیم فل مساواتل عرفیتو بین ال وزینه شرط ارتكازین بین ال متعاملین پس متعاملن بین خودشون این شرط رو دارم که بابا جان من یک سویت میدم در قبالش یه تو همون مایه ها ازت میگیرم نه خیلی پایین تر هم باشه به اون یکی ضرر میخوره این شرط هست خب شرط هست یا الان ایجادش کردیم با سیره شرط هست سیره چه کاره است ؟ کاشفه و هازا خیلی خوب حالا چون مثال رو میخوایم قشن تکمیل بگیم نیاز به یه مقدمه دیگه هم داره و الله همینجا الان برای ما در آقای این مثال تمام بود ایشون بخواد مثال تکمیل بشه چیزی از گوشه کنار مثال نمونه یه مقدمه هم بهش درمیمه میکنه میگه خب در کنار این چیزی که از سیره کشف شد برای ما که متعاملن بین خودشون مساوات اون دوتا مال رو عرفن در نظر دارن شرط دارن در کنارش هم این رو بگیم که اوقلا هم همین چیزا سیر میکنن میکن ببینید و حاض زنزن ال مخت ظهور حال کل انسانه، ظهور حال که هر انسانی هر انسانی نگاه میکن در این ظهور داره نه و یت بهقال مغاسه در اوقلائیت هر انسانی اوقلایی عمل می شما بازار میریید هر فروشنده ای رو می بینید. این ظاهر حال که این در صد این است که سود کنه. هر فروشنده رو میبینید در صدد این هستش که مالی که میده در قبول مال مساوی میخواد این رو بده تق... معامله کنه مقصدهای اقلایی را تبعیت میکند هر انسانی خب اینو هم زمین میکنیم این مقدمه به اون کشف اون شرط یکش فلا محالته ناچار کشف میکند از اراده همین دوتا معتامل همین دوتا خریدار و فروشنده که الان داریم ایزا حاضر شرطه این دوتا متعامل هم همین شرط را رعایت کردند و به حاضر یتزه هم ان نصیلتال اقلاییتال مذکورتا ولا به زمینه همین مقدمه که گفتیم ظهور حالی مذکور تکشف از اون حقیقتی که بود اشتراطل مساوات الارفیت بین ال اوزینه من ناهیت این دوتا خریدار و فروشنده من ناهیت هازینه متعامل متعامل میدونی دیگه یعنی خریدار و فروشنده و معامل کنن و به تالی خب این چه شد؟ موضوع حجم برای ما حاصل شد تکشف تحقق فردن ل موضوع دلیل اون دلیل که دلالت می کند برای چه؟ مؤمنین انده شروع هستند هستن مؤمنین به شروط خود وفادارند این سیره هم برای ما چشف هست شرطی بین این دوتا متعامل که پس باید به این شرط وفادار باشند حکم ما این موضوعش این کاشفش هم سیره حالا این بحثا تمام شد فردا مناتشو انشالله خواهیم گفت محفظ و معید باشید انشالله